اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على نبینا و آله تاهری عزیزان دانشجو خودم عرض سلام دارم روز به عرض مكنم. طحات تو عبادات قبول درگاه الهی انشاءالله که در نعمت صحت و سلامت به طور کامل هستید و از هر گونه بلایی هم به دور باشید بحث ما در قصر بود گفتیم قصر و حصر در لغت به معنای حبسه و در اصطلاح القصر و تخصیص و به آخره به طریق مخصوص اختصاص دادن چیزی به چیزی با طریق مخصوص گفتیم اون طریق مخصوص چهار تاست که خواهیم بعد عرض کردیم که این که ما طریق مخصوص رو داریم بحث میکنیم این نشون دهنده اینه که ما این چهار راه رو به عنوان راه راه های قیاسی بحث میکنیم اما اما این که آیا قصر منحصر در این چهار چهارتاست نه قصر به های دیگری هم اتفاق میفته مثل زمیر فصل مثل عبارت فقط بیاریم لیس غیرو بیاریم مبتدا معرفه باشه خبرش هم معرفه به علف لام باشه مثل خوهش شافی خوهر رازق خب این ها مفیده اصلا اما اینها رو باید یاد گره سماعیه آدم میشنوه یاد میگیره به مرور زمان با مطالعه و دردی شدن با زبان عربی اما این چهار طریق طریق است که بلاغی ها ازش بحث کنه چرا این چهار طریق؟ چون عمده قصرها هم, هم با همین هاست یعنی اگر ما قصرها رو بررسی کنیم 90 درستاشون با همین تا، اون ده درصد درست دروق قصر است که به شکل پراکنده وجود داره و انسان میشنوه و یاد بود. بعد گفتیم تخصیص امرن به آخره یعنی به امرن آخر این امر و امر که گفته به خاطر اینه که قصره گاهی اوقات قصر صفت در موصوفه گاهی اوقات موصوف در صفته گونه است قصر و منظور از صفت و موصوف هم صفت و موصوف لغوی است. صفت اونیه که قائم به ذات نیست در ضمن چیز دیگه پیدا میشه مثل زیبایی، مثل سفیدی، مثل علم داشتن قوی بودن اینا همه صفات هم. در زمن کسی پیدا میشه یعنی یا آدمی زیباست یا آدمی عالمه، یا آدمی قویه امست شد حالا قصر گاهی وقت قصر صفت در موصوفه و گاهی اوقات موصوف در صفت از طرف دیگه خدمت شما عرض کردیم که قصر دو تا طرف هم داره یکیش مقصوره یعنی چیزی که قصرش میکنیم حالا صفت باشه یا محصول یکی هم مقصوران علیه چیزی که چیزی رو در او قصر میکنیم حالا اونم میتونه صفت باشه میتونه محصول یعنی اگر مثلا گفتیم رازقیت ازان خداست فقط رازقیت ازان خداست روزی دهندگی مال خداست مال ایشکی دیگه نیست این رازقیت میشه مقصور یعنی صفت منحصر است در الله که مصوره یعنی ذات اقدس الار قصر صفت در مصور پس بنابراین قصر دو تا طرف داره یکی مقصور یکی مقصورون علیه و قصر دو گونه است قصر صفت در موصوف و قصر موصوف در صفت طرق قصری که ما بحثش رو خواهیم کرد چهار تاست اون طرق قصر اصطلاحی، طرق قصر قیاسی خب، حالا تا اینجای مطلب دوباره تکرار شد بیایم سر بحث تراغ قصر. یکی یکی بحث میکنیم. قشنگ یادداشت میکنیم فرمولش رو. فرمولش رو که به ذهن بسپارید دیگه بقیهش راحت دیگه چیزی نداره که بخواید باش مبحثی داشت باش. اولین طریق قصری که مورد مداقب و مطالعه قرار میدیم بهش میگن النفی و ولی استثناء. ان و ول استثنا یعنی نفیو استثنا نفی میتونه به واسطه عدوات مختلفی صورت بگیره لم ما لیسه ان نافیه نفی استثنا هم میتونه به واسطه عدوات مختلفی صورت بگیره الا غیر سوا لذا ما گفتیم نفی و استثناء بعضی ها می بینید تو کتاب ها میرسن ما و الا درست شو ما و الا اونا نمونه است ما نمونه نفیه حرف نفیه الا هم نمونه حرف استثناء، در عدوات استثناء است. النفی و الاستثناء حالا در جایی که ما قصر نفی و استثناء داشته باشیم فرمول مقصور و مقصور و چگونه است؟ این شکله شما مینویسید حرف نفی درست شد بعد مینویسید به اضافه مقصور مقصور رو مینویسید بعد مینویسید به اضافه عدات استثناء بعد مینوزید به اضافه مقصوران علیه یعنی فرمولش اینطوریه اول حرف نفیه بعد مقصوره بعد عدات استثناس. بعد مقصوران علیه این چارچوب ساختار قصر در و استثناس. پس همیشه اونی که بعد از عدات نفیه و قبل از الا قصر میشه در اونی که ما بعد اللاست. اونی که ما بعد است. یعنی اگر ما اینطوری بگیم ما رازقن ما رازقن الله ما رازقن الا الله یعنی چی؟ یعنی هیچ رازقی روزیدهندهی نیست جز خدا شما اینجا رازقیت رو منحصر در خدا کردید و گفتید فقط خداست که رازقیت داره کسی دیگه نداره اول حرف نفی آوردید بعد مقصور آوردید رازقان بعد عدات استثنار آوردید و بعد هم مغصور علیه الله پس شما وقتی میگه لا اله الا الله یعنی لا اله موجود الا الله اینجا لا اله الا الله از شنو قسری امیل و بعد موقع حرف لان اینجا معبود بودن اله معبود بودن وجود معبود رو منحصر کردید در خدا یعنی در هیچ چیز دیگری این وجود نداره این معبود بودن در هیچ کجای دیگر نیست حالا یه موقعی فکر نکنید که حتما و حتما بقول خودمون قصر مال دار حتما و حتما مال خداونده یعنی مثلا ما مثال هایی که زدیم برای خاطر شما راحت در فقط رو بفرمایید نه اصلا من و شما داریم بحث میکنیم سر بقول خودمون اینکه کی عالمه نحوی کیه جواب میگه میگه ما نحویون الاذه نحوی فقط زید یعنی هیچ دیگه نیست شد. قصر پس این با نفی و استثنا فرمولش به این شکل شد که اول ادات نفی میاد بعد مقصور میاد بعد عدات استثنا میاد بعد مقصوران بعد مقصوران نگاه کنید یک کتاب النفی و الاستثناء و هنا یکون المقصور علی ما بعد ادات استثناء مقصور علی ما بعد ادات استثناء پس مقصور میشه ما قبل ادات استثناء الان مثال یک کتابتون رو نگاه کنید ال میگه لا يفوز الا الموجد لا حرف نفی یفوز و فعل الا عداد استثناث المجد فاعل یفوز استثنا استثناث دیگه الان در لا یفوز الا المجدو یعنی موفق نمیشه مگر آدم کوشا موفق نشدن مال آدم غیر کوشاست موفقیت فقط منحصر در آدم کوشاست موفق نمیشه مگر کوشا، مگر کسی که جدیت داشته اینجا الان شما چی رو دارید در چی قرصی میکنید یفوزو رو در وصف موفق شدن منحصرش میکنید در مجد یعنی انسان دارای جدیت و تلاش قرصر چنو پسریه اسم صفت در منظور حالا گفت اگر مثلا گفته بود ما فائزون الا المجد ما فائزون فرقی نمی که ساختار جمله الان به شکل فعل و فائله اون موقع به شکل خبر و مبتدا می شد ما فائزون فا میشه خبر مقدم المجدد میشه مبتدای مؤخر حالا اگر از میپرسیدن که اینو تو نحوم خوندید که ما فائزان الا چرا خبر مقدم شده آه؟ تو بحث مبتدا خبر جاهایی که مبتدا خبر رجوع جابجا جا میشن یکیش اینه که مبتدا مقصوران علیه شد وقتی مبتدا مقصوران علیهه خبر میشه مقصور مقدم میشه وجود لا یفوزو اللل مجد خب اینو چیز خاصی هم نداشت انفیو و الاستثناء و یکون یکونو المقصور ما بعد عدات الاستثناء ب، ب انما و انما انما و انما هم انما هست اما انما هستشون ادات هست. ان حروف مشببهتون بالفر وقتی مای کافه و سرش در میاد دیگه از ادات تکی تبدیل میشه به عدات قصر فقط انما با انما ای فرقش اینه که انما ای جمله به جمله بودن خودش باقیه، جمله به جمله بودن خودش باقیه اما اما در انما تعویل به مستر میره تعویل به بگید مستر میره برشو، تعویل به مستر میره الان یه مثال من بزنم حالا البته بگم که بتونید اینو بزید. در انما و انما هرچی که مابعد انما و انما هست منحصر میشه در اون جزء آخر یعنی ما مینویسیم انما برای اینکه بتونیم و فرمولش شده شده انما یا انما به اضافه مقصور بعد به اضافه جزء آخر یعنی اون کلمه آخر که مقصوران علیه به اضافه اون جزء آخر که مقصوران علیه یه فرمولشه یعنی شما اینطوری میگید اینطور انما انما قائمون مثلا زيد انما قائمون زیدون اینجا شما چی رو در چی منحصر کردید قائمون رو که قیام کردن باشه منحصر کردید در زید منحصر کردید در حالا اگه بود مثلا انما قائم من المسجد زیدون بازم قائم بودن در مسجد رو منحصر کرده بودید در زید هر بعد از این نما هست بگید میره منحصر میشه در قائم بودن در مسجد منحصر در زید تو اولی قائم بودن به طور مطلق گفته بودیم مولا پس انما میاد بعدش بعدش مقصور میاد حالا مقصور هرچی میخواد باشه باشه بعدی مقصور منحصر میشه در اون جز آخر که اون جز آخر رو بهش میگن مقصور یه نکته نکته رو می این نما و انما که عدات قصر هستند چون مای کافه جلوی عمل را گرفته است یه عروف مشبه به عمل نمیکنه چون مای کافه جلوی عمل را گرفته است این دو بر سر جمله فعلیه هم بر سر جمله فعلیه هم در می آیند مثل این که بگیم انما نما یقوم و زیدون یقوم و زیدون این الان با انما قائم قائمون زیدون مثل همه فرق نمیکن کن اینجا قیام رو منحصره در زید کردیم قیام در آینده رو این نما و زیدان درست گفتیم این نما جمله رو به جملگی خودش نگه میداره این نما چکار میکنه تعویل به مستر میبره الان مثلا این نما یقوم و زیدن. حالا اگر شما قبلش بنویسید بلغنی بلغنی چی میخونیدش؟ بلغنی انما یقوم و زیدون. به من رسیده است که فقط قیام مال زید انما یقوم و زیدان یه انما یقوم و تعویل به مستر میره میشه فایل بلغن پس انما و انما فرقی ندارند جز اینکه انما این چکار میکنه؟ جمله رو به جملگی خودش نگه میداره؟ انما تعویل به مستر میبره ولی هر دوتا عدات قصر هر دوتا عدات قصر نگاه کنید انما رو نوشته انما رو نوشته انما رو نگفته که من خدمتتون گفتم شما؟ عزم رو بالای علف هم بزاری. این انما و یکون المقصور علیه مؤخرن یعنی جزءا مؤخرن مقصور علیه اون جزء مؤخر است وجوباً اونی که به طور وجوبی مؤخر شده اون مقصور علیه خب اگر ما گفتیم انما قائمون زیدان چرا خبر مقدم شد چرا به دلیل اینکه که مبتدا مقصوران علیه باشه مؤخرش ده. اون جز آخر مقصوران علی نگاه کنید توی کتابتون به امسله این نما الهیات و این نما و یعنی همانا فقط این زندگی الحیات یعنی زندگی که ما داریم موصوفه این زندگی که هست الحیاتو این زندگی ما طعبن منحصر در سختی است یعنی آرامش توش نیست این زندگی فقط منحصر در سختی است این زندگی جز سختی نیست یعنی راحتی توش خبری نیست الان چی در چی قصر شده؟ بگید الحیات که موصوفه قصر شده در بگو تعبون که صفت؟ یعنی سخت بودن این نما تعب حالا اگر مثلا قبل از انما نما علم تو علم تو یعنی چی؟ یعنی یقین کردن میخونیم چی؟ علم تو انما الحیاتو تعبون علم تو انما الحیاتو تعبون تعبیر به مستر میره میشه جایی دوتا مفعول علم تو صد ما صد دو تا مفعول علم تو یعنی یقین کردم ولی قصرش همونه یعنی باور کردم این زندگی فقط منحصره در سختیست این و اندار این هم طریق دوم، طریق سوم طریق سوم سه تا کلم است. یکی بل و لاکن که این دوتا مثل هم, هم, هم. یعنی مترادفان این دوتا مثل هما هم مترادفن هم. و یکی هم لا حرف لا پس در واقع انگاه دو است چون بل و لاکن مترادف هم هیچ فرقی با هم ندارد. شما میتونید بل وردارید لاکن بذارید لاکن رو بردارید بل بذارید اینه همه هیچ فرقی با هم ندارد قبل که ما بگیم فرمولش رو بگیم در موردش بل بذارید میتونید لاکن هم بذارید اما لا نه لا حرف دیگه سه تا هستند عدوات لا بل لاکن سه تا لا حرف عطفه لا حرف عطفه اما بل و لاکن حرف عطف نیستند حرف عطف نیستند یعنی عطف نمی کنند شد نم؟ اما توی کتاب بلاغتی مثل همین کتاب ما و غیره اینا ستا رو میگن عطف به لا یا بل یا لا که. منظور یعنی آوردن ولی لا حرف عطفه اما و لاکن حرف عطف بگو نیستند حالا اسم یه دونه رو قلبه دادند چون لا حرف عطف بوده قلبه دادن روی اون دوتای دیگه ولی بهتر اینطور بود بگن قصر با لا و لاکن قصر با لا و بل و لاکن اگر گفته بودن بهتر بود ما موقع که قصر با لا و بل و لاکن صورت میگیره لاش حرف عطفه اون دوتاش حرف عطف نیستن خب اینم فهمیدیم در مورد لا خصوصیت اینه یک در مورد لا کلام باید مثبت باشد. کلام باید مثبت باشد. کلام باید مثبت باشد. دو. لا حرف عطف در مفردات است. قصد. باید ما بعدش که میخواد عطف بشه و لا حرف مفرد باشه جمله نداره لا مفرد عطف میکنه پس کلام مثبت باشه معطوف و معطوف و هم مفرد باشه در این صورت در این صورت حکم کلام حکم کلام یا بگیم جزء مقدم کلام در ما بعد در ما قبل لا در ما قبل لا منحصر می شود در مقابل در مقابل ما بعد لا در مقابل ما بعد لا پس فرمولش اینجوریه مقصور می‌نویسیم مقصور به اضافه مقصور علی بعد ادات لا به اضافه ادات لا بعد پشت ادات لا می نویسیم مقابل مقصور علی مقابل مقصور علیه. الان نگاه کنید من یه دین مثال بزنیم. قام زیدن لا امرون قام زیدن لا امر. الان امرت شد به جای زید شما این قام زیدون لا امرون رو قامه چیه؟ مقصود قصر شده قیام در چی؟ در زید قیام مال زیده در مقابل کی؟ یعنی قیام مال زیده مالیش کسی دیگه نیم؟ یعنی؟ نه نه در مقابل امر یعنی مال امر نیست ما به کسی دیگه باید نداریم قیام مال زیده مال عمر بگید. ام فقط مال زید است نه عمر. میشه نمر قام زید لا الان این قصر چی در چی بود قصر صفت در موسوف حالا اگر من اینطور بگم بگم زیدن قائمن زیدون قائمون لا قائدون زیدون قائمون لا قائدون یعنی چی؟ یعنی زید منحصر در قیام کردنه نه قعود و نشستن زید اهل قیامه اهل قعود نیست زید فقط اهل دیام اهل قوود نیست دیگه با بقیه استفاضه کاری نداره اما این چنو قصری شد الان زیدون قائمون لا قائدون قصر موصوف در سفر زید که موصوفه منحصر شده در قیام کردن در مقابل قعود کردن و نشستن خوب فهمید ده چیز و خاصی ندوشه کلام مثبت باشه لا در مفردات عطف میکنه ابتدا مخصور میاد بعد مخصورون علیه میاد که ما قبل لاست معتوفون علیه بعد لا میاد که عدات قصره عدات عطفه بعد چیزی میاد که مقابل مخصورون علیه الان نگاه کنید تو متن کتابتون میگه العتف و بلا لا او بل لا که ما گفتیم که بلو لاکن حرف عطف نیست ولی لا حرف عطف قبول میکنیم حالا داریم میخونیم میگه فعن کان عطفو بلا اگر عطف لا باشه کان المقصور و علی مقابلن لما بعد ها میخوره به لا مقصوران علی اونیه که مقابل با ما بعد لاست اون جز که مقابل ما بعد لاست میشه مقصوران حالا بیاید توی مثال کتاب سی رو نگاه کنید الارضو متحرکتون الارضو متحرکتون یعنی این زمین حرکت دارد میشرفه به حرکت میکنه به دور خورشید ارزو یعنی کره زمین متحرکتون لا ثابکتون ثابت نیست یعنی ما چیکار کردیم ارز رو که موصوفه منحصر کردیم در صفت حرکت کردن ها نمیخوایم بگیم فقط زمین یه صفت داره حرکت کرد نه زمین منحصر در حرکت کردن در مقابل بگید ثابت بودن یعنی زمین فقط متحرک است و ثابت بگید نیست این الان قصر چی در چیه؟ قصر موسوف در بگید صفت قصر موسوف در صفت عرض که موسوفه منحصر شده در متحرک بودن در در مقابل ثابت بودن عطف بلا میگه کانل مقصور علی مقصوران علی اون جز که مقابل ما بعد لاست اون جز ایه که مقابل ما بعد لاست. لاست مقابل ثابتتانه کدومه تون. اون میشه مقصوران علی خب ما قبلش میشه مقصور بودن. خب اینو یاد گرفت. اما بل و این دوتا مثل همه این دوتا مثل همه هرچی در مورد یکیش بگین در اون یکی اولا بل و در کلام منفی واقع میشه. در کلام بگید منفی واقع میشه. و مقصوران علیه دل بل ولاکن مابد این دو است بعد این دو است در مقابل ما قبلشون در مقابل ما قبل پس چی گفتیم؟ گفتیم بل و این دوتا اولا در کلام منفی میاد کلام منفی بشه دوم بعد از بل باید مفرد بیاد مفرد سوم ما بعد بلولاکن مکسور علیه در مقابل جزء مقدمی که قبل از این دو تا اومده ما بعد بلولاکن مکسور علیه در مقابل اونی که ما قبل این دو خب ما بعد میشه مقصور در مقابل ما قبلش ماقبلش ماقبلم که مقابل این مقصوران علیه قبل این دوتا اگه چیزی باشه میشه مقصور پس اول میشه مقصور بعد میشه جزء مقابل مقصور علعی بعد میشه عدات قصر یعنی بل و لاکن بعد میشه مقصورن علی پس فرمولش چطور شد اول بگید مقصور بعد جزء مقابل مقصور علیی بعد عدات قصر بعد مقصور علی حالا قبل از مقصور می نویسیم عدات نفی یعنی اگه فرمولش رو بخوایم بنویسیم میشه عدات نفی در این دوتا اول عدات نفی بعد مقصور بعد جزء مقابل مخصوران علی بعد بلو لاکن که عدات غصره بعد مخصوران علی بعد مخصوران دیگه یاد گرفتید چیزی نیست که اول عدات نفل بعد مخصور بعد بگو جزء مقابل مقصوران علیه بعد و لاکن گعدات غصره یکیش بعد مقصوران علیه بعد مقصوران نگاه کنید نگاه کنید مثال چهار بود مثال چهار و مثال پنج مثل همه دیگه تکرار چون از شرایطی دشود. یه مل ارزو ثابته تن چون اینجا عمل میکنه. مایه مشابتون بله احساس دیگه. ال ارزو میشه هست میشه ثابته میشه خداش مال. من میشه ثابته تون. قلاده. چون حرف هر نیستن که مل ارزو ثابته تن. بل یا لکن متحرکتون بل یا لکن متحرکتون الان اول چی اومده عدات نرد بعد چی اومده مقصور که عرضه چون قصر موصوف در زمان. بعد عرض رو منحصر کردیم در ما بعد بل و متحرک بودن در مقابل ما قبلش که ثابت بودن باشه یعنی این همون مثال قبلی با لا گفتیم حالا با بل و لاکن گفتند یه تفسیر بنویسید یه تفسیر بنویسید از آنجایی که بل و لاکن حرف اعط نیستند لفظ مابد این دو مرفوع خانده می شود لفظ مابد این دو مرفوع خانده می شود و خبر برای مبتدع محضوف است وجوبند یعنی اینطوری بوده بل هی هم متحرکتون لیکن هی متحرکتون خبر برای مبتدای واجب هست چون عادت نفی مکسور ادات نفی میگیم ممکن ادات نهی باشه فرقی نمیکنه نفی نهی منفی باشه مثلا بعد ادات نفی مقصور مقابل مکسور نندای بلو لاکن بعد مخصور و گفتیم اینا حرف اذفم نیستند و مابدشون بعدشون اون جزئی که میاد مرفوعه و خبر مبتدا محذوف این مثال رو هم دیدید مل ارض ثابتتن بل متحرکتن مل ارض ثابتتن لاکن متحرک حالا بذارید برای خاطر این که اینجا دیگه تمام شد چون بحثی که میخواستیم در مورد بلو لیکن تمام شد یه مثال بزنم براتون یه مثال نگاه کنید این آیه رو شاید همتون تون بلد باشیدین و بر، چون خیلی به عنوان شعار هم برای شهدا نوشته میشه ولا تحسبن لذینه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیامون اندراب به این بل عدات قصر نگاه کنید لا تحسبن نه یعنی گمان نکن نمونه لام لاملای ناهی است نهیه گمان مبرد گمان نکن اللذینه مفعول اوله الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن این الذین مفعول اوله امواتن مفعول دومه لا تحسبنه آیا کلام منفی هست یا بله نه الان مقصور کدومه الذین یعنی الذین قتلو فی سبیل الله یعنی شهدا کسانی که کشته شدند در راه خدا میگه این کسانی که کشته شدند در راه خدا اموات مپندار بلکه احیا هستند یعنی الذین قتلو فی سبیل الله منحصره در احیا بودنند در مقابله بگید اموات بودند یعنی اینها زندگانند فقط و مردگان بگید نیست الان نگاه کنید ما میگیم حرف عطف نیست انواتن مفعول دومه بلو لا تحصابند است شده چی؟ منصوب احیاون که بعد از بل که نه درست شد مرفوعه یعنی خبر مبتدا محضوبه یعنی هم احیا بل هم احیاون لاکن حالا اینجا بل نبود لاکن بود لاکن احیاون یعنی لاکن هم احیاء احیایی هستن که اندرب بهم یرزقون زندگانی هستن که پیش پروردگارشون روزی دریافت حالا اگر به جای لا تحسبن نبود نیست لا یس الذین اوتلو فی الله امواتن فرض نمید. او شد اسم لیثه امواتن میشد بگه خبر لیسه نیسلذین لذینه و فی سبیل الله امواتن بل احیاء دراب به. پس بنابراین پس بنابر این ما بل و لاکن رو آموختیم و مباحثش رو دانستیم مل عرض و ثابتتن غلط نوشته کتاب ها ثابتتون شاید توخم کرده فکر کرده که بل و لاکن حرف عطفه چون اصطلاح بلاغی ها می نویسن علا عطف و بلا و بل و لاکن در واقع لا رو غلبه میدم بر این دوتا ولی این دوتا حرفت مسته. مل عرضو ثابتتن انگار گفته لای ستل عرضو ثابتتن بل متحرکتون مل عرضو ثابتتن لاکن متحرکتن خود اینم تمام شد طریق چهارم کدومه طریق چهارم بهش میگن تقدیم ما حق هو تقدیم ما حق و هو مقدم کردن جزئی که شایستگی اون مؤخره باید مؤخر می میامده ما مقدم کردیم به قصد قصر مقدم کردیم به قصد قصر تقدیم ما حقه تأثیر مقدم کردن به جهت اینکه قصر میخواستیم درست کنیم و شایسته بوده اون موخر باشه جاش مخره یعنی اگه قصد قصر نبود باید سر جاش مآمد مثلا مثل ایاک نعبود و ایاک نستعین اگر ما قصر قصر نداشتیم باید چی میگفتیم؟ باید میگفتیم نعبودک و نستعینک اگر میگفتیم نعبودک و نستعینک خبر داده بودیم ما تو رو عبادت میکنیم و از تو هم کمک میخوایم. ولی این دیگه ازش فهمیده نمیشد کسی دیگر رو عبادت نکنیم و از او کمک نخواییم ولی وقتی گفتیم ایاکن عبودو کاف رو مقدم کردیم مقعول رو بر نعبودو ایاکن عبودو و ایاکن است؟ این اینجا بگید دیگه ترجمه شون میشه فقط تو رو عبادت میکنیم عبادت ما فقط منحصر در توست نه ایش دیگه استعانت و کمک خواستن ما منحصر در ذات اقلاص الاریه و از کسی دیگه نمیخواد قصر میشه ببینید پس اگر ما یه موقعی گوش کنید یه موقعی اون مفعوله که مقدم شده مثلا عدات استفهامه مثلا من رأیته تر این نیست این چون من ادات استفهامه صدارت داره مفعول باید مقدم شد یه خب نیست یه موقع مقدم کردیم مفعول رو مثلا به خاطر اینکه شدت اشتیاغه این داره به این اسم داره از این اسم رو نمیتونه معخر کنه دهنش رو باز میکنه اسم او میاد مثل شاعر معشوقش اسمش لیلا اسم. میکنه لیلا رعی این یعنی رعی تو لیلا ولی نمیتونه این دهن بازمونس دیده دهنشو باز میکنه فقط از پول هر کنید اول پول در بیرد بزن این هم همینطور اون باز نیست مقدم شدن این که جاش مؤخره و قرز از او که مقدمش کردیم قصر باشه و متکلمه باب قصر اراده قصر چه نگاری بکرده یا موقع مفهول مقدم کرده به خاطر قافیهش درسته به خاطر اشتیاق مقدم کرد، به خاطر صدارت دار بودن مقدم اونا کار نداریم ازا چیزی رو مقدم کرد؟ بلکه مقدم شدنی که قصد و قرض از او قصر باشه و اگر این قصد و قرض نبود حق او حوات تاخیر. جاش بود داره سجار بودش, بودش. این هم طریق رو نگاه کنید تقدیم و مقدم کردن ما حق و چیزی که جایگاهش معخره حالا در اینجا فرمول چطوریه فرمولش اون جزء مقدم میشه مقصوران علی اون جزء مقدم میشه مقصوران علی ما بعد هرچی آمده میشه مقصور یعنی نعبد و عبادت کردن خودمان را مقدم چیه؟ کام ایا کرد منحصر در او کرد قصر چنو قصری قصر یاکنه بوده قصر صفات در مصور عبادت کردن ما صفت منحصر شده در ذات عقبست نگاه کنید تقدیم و ما حق و هوت تغییر و هنا یکونو المقصور علی خوف المقدم و هنا یکونو المقصور علی خوف المقدم یعنی الجزء ال مقدم مثال کتابتون رو ببینیم مگه اون تموم شد اول رجال اول آملین نسنی نس یا کن فقط اونجا مفعول به مقدم شده اینجا جوان و مجروف مفعول با واسطه اول رجال ال آملین ما بر مردان کاری بر مردان اهل عمل نسنی عمل دارند و فقط حرف نمیزنند نسنی سنا و ستایش میکنی سنا و ستایش ما فقط بر است که اهل عملند اورهارو رو سنا و ستایش میکنیم هرکه اهل عمل است مورد حمد و ستایش ماست اینجا نسنی سنا کردن خودمون رو منحصر کردیم بر رجال عاملین مردان اهل عمل العاملین صفت رجاد. درس شد دیگه؟ حالا اگر این مبحث رو فهمیدین و همه اون که باید گفته بشه رو من گفتم و دیدید نگاه کنید بحث رو میگه اذا تعمل تا الامثلت از اگر مثال های گذشتری توش دقت کنی که من گفتم رعی ان انا کلا مثال منها میبینی که هر مثالی از اینها یتزم من در بر گرفته تخصیص عمر اختصاص دادن چیزی رو به آخره به چیز دیگر. فل مثال اول مثال اول لا یفوز و علل مثال اول یفیدو تخصیص الفوز بل مجد اختصاص دادن موفق شدن رو منحصر کرده موفق شدن رو در مجد آدم کوشان <تصفيق> یعنی چی؟ اختصاص داره بود به معنی اندالفوزه خواستون برمجه به این معناست که موفق شدن منحصر در کوشاست لا یتعداه و لا یتجاوزه الا سواه یعنی الا غیره این اختصاص داره به کوشا و دیگه از اون نمیگذره و به غیر کوشا نمیرسه مال کوشاست و بس معنی این ول مثال سانی یفید و تخصیص الحیات مثال دوم اختصاص داده این زندگی خودمون رو به تعب به سخت بودن به معنا به این که به این معناست که انل حیاته به این معناست که این زندگی ما وقف علت التعب منحصر در سخت بودن، خسته کننده بودن، لا تفارقوه روحه در توش آسایش و راحتی وجود نداره فقط است راحتی توش دیده نمیشه و ها یغال و فی بقیه فنسده. همینطور بقیه مثال هارم که من براتون توضیح ده. و ازا عردتن تعریف منشه احازت تخصیص و اگر بیای دقت کنی تو ساختار این جملات و منشه این تخصیص رو در کلام پیدا کنی. و عرض تن تعرف منشأ حوزة تخصیصاً در کلام منشأ این تخصیص در کلام رو بخوای پیدا کنی کبا که أنت حسب فعل امثلات دلیل کفایت میکنه که تو مثالها یه مقداری دقت کنی تحقیقی کوتاه بکنی در این مثالهایی که ما برای شما بران دفاقه. یعنی که تو رو بی نیاز میکنه این که بحث کنی همه چی به تو میده این که بحث کنی تخلیر کنی در مثال های مقدار کرد خذ المثال الاول مثلا مثال اول بگیر وحظه منهو، حذف کن از او عداته ای ان نفی و الاستثنان دو عداته نفی و استثنان ازش حصف. میشه یفو، ظلم و جدو. موفق میشه آدم کوشا میگن اثباتش نفی معاعدا نمی کنه خب آدم کوشا موفق میشه درست اما این نمیگه که غیر کوشا موفق نیست این ازش دیگه فهمیده نمیشه قصد ازش فهمیده نمیشه وحظت من عدا تایی ان نفی خواهی یافع انت تخصیصه قد ظالم این هم ظالم یعنی انتقارم میبینی که تخصیص از اون روب است رفت و که انهول هم انگار اصلا تخصیصی تو کلام نبوده تموم شد و که انهول هم یکنه ازن ان نفی و الاستثناء هما وسیلت و تخصیص پس در نتیجه ما این نتیجه رو میگیریم که نفی و استثناء این دوتا وسیله و عدات تخصیص در این کلام و به مثل حاضه طریقته و با همین شیوه تستتی و انتدرکه تو میتونی به ان نوزا الات تخصیصه فل امثلت الباقیته یا انما ول عطف و بلا و بل و لکن و تقدیم و ما و تغییره میگه با همین شک تو میتونی بفهمی که وسایل تخصیص در مثال های بقیه انما هست که ما گفتیم انما هم داریم فرق نمی کنه عطف و بلا هست که واقعا عطف صورت میگیره درست شد با بل و لکن هم گفتیم تخصیص صورت میگیره و عطفی در کار نیست و تقدیم و ماهد قبط تخیر تقدیم چیزی که جایگاش تخیر و یوسم می علماء المعانی و می نامند یوسم می علماء المعانی علماء معانی می نامند از تخصیص المستفاد من حاضر وسائله بالقصر تخصیصی که به دست میاد از این وسائل رو اسمشو میذارن قصر ش میگن قصر و یسمون الوسائل نفسها طرق القصر و مینامند خود این عدوات رو این عدوات رو مینامند طرق قصر راهای قصر حالا ارجه الان امسلت مرتن اخران نگاه کن به مثال های یه بار دیگه وجب ها فیها واحدن واحدن و یکی که شونو مورد دقت قرار بده تجدل متکلم مثال اوله میبینی متکلم در مثال اول یقصر الفوز علی الموجد قصر میکنه موفقیت رو بر موجب فل پس اونی که قصر میشه فوزه و مجد مقصور رو, رو علیه پس ما دو طرف داریم یکی مقصور و دیگری مقصور داریم و همه طرف و القصر و این دوتا طرف قصر ولما کان الفوز دو من از صفات و چون موفق شدن است از صفات به معنی لحوی مثل شجاعت مثل زیبا بودن مثل قوی بودن اینا صفتن ولم ما کانر فوزو صفتن من از صفات ول مجد دو هو والموسوفه و مجد هم عبارت است از موسوف کسی که این صفت موفق شدن رو میشه بهش نسبت داد هو والموسوفه به ها ز صفت کانر قصروفی هاز المثال قصر صفتن علا موسوف قصر صفات بر موسوفه صفت موفق شدن رو منحصر کردیم در انسان کوشه به معنا به این معنا ن اینه به معنا انه از صفت یعنی حاضر صفت ها. به معنا انه حاضر صفت به این معناست که این صفت یعنی موفق شدن فوز لا تتعدا الموصوف نمیگذره از این موصوف یعنی مجد الى موصوف آخر به یه موصوف دیگه نه تو همین موصوف میمونه این صفت موفق شدن مال این موصوف مجد رستگار و دیگه در غیر او یافت نمیشه میشه قصر دیگه لا تتعدا الموصوف الی موصوف آخر و تراهو و میبینی باز این قصر را فلم مثال ثانی میبینی متکلم در مثال دوم یقصرون حیات حالت تر میبینی که اومده قصر کرده تراهو یعنی ترا متکلمه بالا گفت تجدل متکلم فلم سال اول یقصرون حالا میگه و تراهو و میبینی متکلم رو فلم ثانی در مثال دوم یقصر الحیات قصر میکنه این زندگی که ما توش هستیم رو بر ترعب سخت بودن بله حیات پس حیات مقصورست است شده و تعب مخصورن علی و سخت بودن مخصورن علی ولما کانت ما كانت الحیات و چون حیات موسوفه آ این زندگی میشه چیزی رو بهش بدیم بگیم این زندگی سخته این زندگی زیباست این زندگی کند، این زندگی تنده میشه صفات بهش نصفت و تراه و یعنی تر متکل فیلم سالستانی یخصور حیات علت تغب فلحیات و و تغب و وله حیات و مقصورتان و تعب و مقصوران وله ما کانتل حیات و, کانت و موصوفتان چون حیات موصوفه و تعب و لها و تعب صفته برای اون این زندگی سخت است سخت بودن بهش نسبت کان القصروف المثاله قصر موصوفه نده صفت این قصر در مثالی که ما توش هستیم از نوع قصر موصوف بر صفته یعنی چی؟ به معنا انل مصوف به این معناست که این مصوف یعنی این زندگی لای و فارق و از صفت سخت بودن جدا نمیشه که بره مثلا سراغ و صفت راحتی نه همین تو صفت تعب و سخت بودن میمونه مقصور در همین صفت سخت بودن این زندگی سخت است فقط یعنی آسایشی توش به معنی ان الموصوف لا يفارق و صفتت تعب الا صفت راحت ولو انک تدبرت میگه حالا اگر تو دقت کنی جمیع امثلت القصر همه ی مثال های قصر که تو رو باشم یاد گرفت همه ی مثال های قصر رو بری دقت کنی جمعی امثلت القصر ما ذکر انها ها هنا چه اونایی که اینجا ذکر شده و ما لمیاز کرد چونهایی که ذکر نشود. هر مثالی که برد که توش قصر باشه بری دقت کنی ولو انکه تدبر تا جمعی همسلت القصر ما ذکرم اینها هونها و ما لمیاز کرد لوجت خواهی یافت کل مثالن یشتمل و علا مقصورن و مقصورنن میبینی که هر مثالی دو طرف داره یکی مقصور و دیگری مقصوران علیه تمام اینها دارای دو طرف هست مقصور مقصوران و وجد قصر لا یخلو و بعد هم میبینی که قصر خالی نیست انحال من الحالین سابقین قصر از یکی از دو حال گذشته خالی نیست حتما برای یکی از این دو حال است و وجد طلاق اصل لا يخلو من حال لا يخلو عن حال من الحالين السابقين فهو پس این پس اب ماقص و صفت النالو موصوف یا پس صفت در موصوف و یا ماقص موصوف النالو صفت از این دوتا تاون خارج میشه یا قص صفت در موصوفه یا قص موصوف در صفت دو تا طرف هم داره مکسور و مخصور و علی و چهار تا راه طرق قصر هم دارم نیونه و ازا علبتن تعریف از و اگه دلت مخواد که یاد بگیری قوائدی که تو سحل و كل معرفت کل من المقصول و که بر تو آسان کند شناخت هر کدام از مقصول و مقصول علیک و فی کل ما یرد و در همه مثال هایی که بر تو برسه بر تو آسان کنه شناخت مخصول مخصول و نلنگ رو فنظر علال قواعد الادیه نگاه کن به قواعد زیر که میاد تجد زالکه مفصله اینو حتما به شکل مفصل و کامل خواهی که ما برای شما اینو خوند حالا من یه مقدمه ای میخوام درست بکنم برای درس بعدمون بحث قصر قسمت دوانش که کار رو تمام میکنه یعنی دیگه بحث قصر تمام میشه چون من خیلی هم روی این بحث قصر برای شما وقت گذاشتم و نکاتشو گفتم مثالهاشو بیان کردم و حتی جایی که کتاب هم اشتباه ها داره درست کردم که بتونید کامل یاد بگیرید ببینید قصر به طور کلی یعنی اینجا دیگه بحث نمی‌کنیم ادات غسل چیه غسل به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه ما یه بار غسل رو تقسیم کردیم به دو دسته غسل صفت در موصوف موصوف در درصات اونو یاد گرفت اونم به درد مون هم می‌خوره ازش برای فهم معنا استفاده میکن. اما اینی که الان داریم تقسیم میکنیم این اصله معنا مدنظر نظره. تکرر به طور کل به دو دسته تقسیم یک قصر حقیقی دو قصر اضافی اینجا اضافی منظور یعنی نسبی یعنی نسبی قصر حقیقی و قصر بگیر اضافی اضافی هم گفتیم یعنی منظور نسبی قصر حقیقی چیست؟ قصر حقیقی چیست؟ هرگاه چیزی را در چیزی قصر کنیم در مقابل همه چیست در مقابل همه چیز به طور مطلق این قصر قصر حقیقی نامیده می شود این قصر قصر حقیقی نامیده می شود یه چیزی رو منحصل در یه چیزی میکنیم در مقابل همش میگیم این است فقط و غیر این نیست هیچ هیچ نیست میشه قصر حقیقی مثل چی مثل اینکه بگیم ما رازقون الا الله ما رازقون الا الله ما رازق انهلالله یعنی چی? یعنی رازقیت مال خداست مال هیچ چیز دیگه هیچ کس دیگه نیست این صفت رازقیت مال این و مال هیچ موصوف دیگری نیست این رازقیت مال این موصوفه و مال هیچ موصوف دیگری بگید نیست اصلا و عبدال ما رازقون الله. درست شو؟ فکر نکنید که این قصد حقیقی فقط اختصاصی به خدا دارد نه مثلا فرض کن ما میگیم ما امیر المؤمنین الا ما امیر المؤمنین الا علی یعنی چی؟ یعنی امیر المؤمنین نیست مگر علی علیه السلام یعنی لفظ امیر المؤمنین است هیچ کس دیگه دیگه امیر نیست این لبسیه که پیانبر خدا به امیر علی علیه السلام داده مال اونه فقط هیشکی دیگه دیست. مثل این که بگیم ما خاتم النبیین ما خاتم النبیین الا محمدن صلی الله علیه دیست. خاتم النبیین نیست خاتم انبیاء الهی نیست مگر علی علیه السلام دوشون خاتم انبیاء الهی فقط امیرون فقط پیانوره امیر المؤمنین فقط علی علیه السلام است و های دیگه که خودتون می‌تونید داشته باشید یعنی یه چیزی رو در یه چیزی منحصر میکنیم در مقابل همه چی می‌گیم این مال اینه مال هیچ چی دیگه نیست میشه قصر بگید حقیقی قصر حقیقی الان نگاه کنید این فقط هم ماله نمیدونم خدا و پیامبر و امیر و, و اینا نیست من مثال زدم پی شما الان مثال کتاب نگاه کنید مثال یک میگه لا یوروی مصر من و انهار الا نیلو رود نیل اروا یوروی یعنی سیراب کرد خیز کرد آبیاری کرد سیراب نمیکند مصر را از نهرهای دنیا از رودخانه های دنیا هیچ رودخانه‌ای مصر رو سیراب نمیکنه مگر رود نیل شد چی داره میگه میگه کشور مصر تنها یک منبع آبی دارد اونم رود نیله که از بالا را میفته میاد تا پایین یعنی از ارتفاعات سودان میاد وارد مصر میشه تا پایین مصر رو هیچ نهری از نهرهای آدم آبیاری نمیکنه جز رود نیل یعنی سیراب کردن مصر منحصره در رود نیله نه هیچ رود دیگری هیچ چی فقط رود نیست. خب میبینید که قصر حقیقی است آبیاری کردن مصر منحصر در رود نیل است و نه هیچ رود دیگری لا یوروی مصره مصر غیر منصرفه منال انهاره یعنی کشور مصر ایلن بعدی رو نگاه کن دو این نما رازقا الله تو اولی عدات قصر چی بود؟ نفی و استثناء لا و الا تو این چیه؟ این نما این نما ار رازقا الله ار رازقا خبر مقدم الله مقتده ما چرا خبر مقدم شده چون مخواست قصر بشه در مبتدا. رازق بودن فقط منحصر در خداست رازق بودن فقط منحصر در خداست الله قصر قشنگی نوشتی آقای امام قدر درست است. ما پایتخت تخت و خوشنویزی رو منحصر کردیم در قضیق انما نما الله رازقیت منحصر در الله یعنی هیچ کس دیگری رازق نیست هیچ کس دیگه‌ای رازق نیست همه غیر رازقند جز خدا رازقیت مال خداست انما ارزقوا الله این قصر حقیقیه نگاه کنید توی قاعده میگه القاعدتو یعنی قسم رو به اعتبار حقیقت و واقع قسمان تقسیم میشه قسم به اعتبار حقیقت و واقع به دو قسم یک حقیقی جان و هوه ان یختست المقصور بالمقصور علی این که اختصاص بیدا کنه مقصور به مقصور علی به حسب الحقیقت و الواقع به حسب حقیقت و واقع یعنی همه چیز اللا تعداه غیره اصله به اللا تعدا و علاقری هستا به اینکه منحصر در این است و از این عبور نمیکنه به هیچ چیز دیگه هست به اللایت تعدا و علاقیر هیل از این عبور به و هو به به به والواقع بهلا یا تعدا و اینکه اصلاً از این عبور نمی‌کنه به غیرش از میشه قصر بگی دقیقگی خب من یه مقدار از مبحث رو گفتم مابقی ان شاء برای جلسه بعدمون که تمام میشه ولی به شرط اینکه ان شاء تا شنبه آینده که وقت هم دارید مباحث قصر رو جمع کنید مطالعه کنید آ پیش خودتون داشته باشید که ما بغی یک بار تو عمرتون قصر رو یاد میگیرید هم به دردتون تو فارسی میخوره هم به دردتون در عربی میخوره تو ترجمه میخوره تو فهم معنا میخوره تو آخر عمرتون هرچی که باید در مورد قصر بدانید رو یاد گرفت و من هم هرچی که کتاب نقص و کم داره و مطالب دیگه اش دارم بیان میکنم خیلی هم آروم دارم میگم یعنی درسی رو که باید توی یک جلسه بگیم تو سه جلسه بگیم دو جلسه میگیم برای خاطر که شما بتوانید بهتر مباحث رو یاد بگیرید. موفق و معیق باشید الله در پناه خداوند سالم باشید انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برد